ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی در ایران اولین پادشای مملکت دو متون شده اولین انسان در متون یعنی این شخصیت دوگانه شده حتی در متون ما اغورا مزدا هم دوگانه میشه یه جا خدای اولیت، قدر قدرت و آفریدگار یگانه هست یه جا نیاد به حد احریمان این موازات پیدا میکنند و با این زروان پیدا میشه ما حتی این بازی رو با خدای یگانه این مملکت هم داشتیم دیگه وای بال شخصیت های تاریخی و پ چین کل تاریخش به 3000 سال نمیرسه ما فقط 9000 سال خط داریم اصلا از پیدایش خط در سرزمین ما فقط 9000 سال می‌گذره چین کل سرتاته‌ی تاریخش به 3000 سال نمیرسه این تفاوت ایجاد می‌کنه ولی اصلا اون منطقه جیرفت بالای 10000 سال الان چیز داره طبعاً هر حال تو کرمانشاه هم داریم اصلا یه جا هست شما می‌بینید میاد اصلا صحبت میکنه مثلا در یسنا هات 9 اومده میگه ای هوم کدام این کست دیگر وارد در میان مردمان جهان تو تومن از تومن یعنی جهان مادی خلاف مینویی از تو نوشابه بر گرفت نوشابه این اسمی که ما الان داریم میذاریم از کلمه انوش آب بوده ان منفی کننده بوده اش یعنی مرگ بوده آب هم که اون آب یعنی نوشابه که ضد مرگه یعنی آب حیات میوخته هم آب حیات که الان میبینید حیات میبخش. از تو نوشابه گرفت کدام پاداش به او داده شد و کدام بهروزی به او رسید یعنی عملاً داره گیاه ها اصلا باش حرف میزنه با امان یه زنده میبینه آیا باید بگیم آقا گیاه زنده است؟ باش با گیاه حرف میزده؟ اصلاً سب که حصورها همه پیش از در توش به نام خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان گرامی ایرانیان اندیشمند و علاقمند به تاریخ و دانش قسمت 17 همه برنامه ایرانویج رو در خدمت شما هستیم در ادامه مباحث رسم نوار تاریخی ایران در قسمت های گذشته تا قسمت 15 هم به 3 تا سرماه ما تا حدودی بهش رسیدیم یعنی سرماهی دوری سیامک، که جمشید در واقع نویدش رو میده و به اضافه سرمایه دوری که خسرو در قسمت 16 هم به اسنادی که در رابطه با دوری زرتشت، اشو زرتشت و همچین دوری کیگوشتاس پستش یک چیزی در حدود 8000 سال پیش، 8200 سال پیش تقریبا متفق قول هستیم که در این دوره هستش هم اسناد یونانی و همچین اسناد خود شاهنامه این رو میپذیرن که خصوصا در مورد اون سر به معروف کاشمر که توسط مرتسم خلیفه عباسی سوزونده شد در واقع اول قرار شد که اون کنده بشه ببره به سامر را و در همون جام در واقع خوش شد و سوزوندنش و تقریبا این باقی نموند از کنم حضورتون که در ادامه مباحث باز هم در این قسمت هم از جناب آقای فیروزی بازم از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد جناب آقای فیروزی در قسمت گذشته قیاس کردن مسئله باستان شناسی چین و تجربه ای که باستان شناسی چین داشت که اتفاقا به نظر بنده علاوه بر حالا نقد محترمانی که دوستان داشتم خود بنده اعتقاد دارم که اطفان چیز بدی هم نیست هیچ ایرادی نداری که ما بیایم از تجربه کشورهای دیگه و از تجربه مردم دیگه استفاده بکنیم اگه تجربه خوبی توی باستان شناسی دارن و در استخراج و همچنین کشف بقایی تاریخ خودشون دارن هیچ ارادی نداره ما بیایم ازشون استفاده بکنیم و در عین حال اینکه اونها هم تا حدودی برخی از اسطوره هاشون که به نظر خیلی داستان و افسانه و دروغ می اومد تونستن بقاییاشو کشف بکنند و یک تاریخی رو برای خودشون بنویسند جناب آقای فیروزی اولا این فرمایش شما رو در ادامه اون فرمایشات می و به اضافه مسئله که گشتاف رو که ما یک طلبی از شما داریم که از دید ستاره شناسی این مسئله رو یه تاریخ مانندی رو برای ما بگید که دقیق باشه تا حدودی خیلی متشکرم بر شما و دوستان از شنوندگان ارزان خدمتون درباره اینکه ما باستان شناسی قرب رو قبول نمی کنیم ولی حالا داریم پناه میبریم مثلا باستان شناسی مصر و چین این دوتا مثلا قیاس معفرراغ به دور هست چرا؟ چون من نظرم هست که بله باستان شناسی برای ما قابل قبول نیست ولی باستان شناسی چین برای چین بسیار قابل قبول هست چون این همون حکایتی است که دوستان میگن که مثلا چرا به چین نگاه میکنی میگن که گاریو که ده بار که نمیتون اختراع کنیم که گاری یک بار در چین جواب دو اختراع شد حالا ما دو بیام از کنیم نه بلد. گاری گاری است و من از تجربه چین استفاده میکنم برای باستان ایران چون جنس بافت و بررسی و میراث رفتن داشته‌ها یکی یکیست ممکن بعضی جا تغییر کنه ولی کلیت یکیست و بشر هم در همه جای یک شکل هست یعنی تاریخ نویسی و تاریخ سرگذشت یه جور هست با مریخ من صحبت نمی‌کنم که مثلا ببینیم تجربه متفاوته این به خاطر این هست که من چینی یه سری متون مم... کهن داشته عین ما اونا اثبات کردن ما هنوز نکردی. البته برای کاره دیگه هم هست چون ظاهرا ناسا گفته که در سال 2033 سال ملاقات زمینی ها با فرازمینی ها شاید اونام از تجربیات بتونه استفاده بکنه. دقیقاً. واسه این است که به حال ما مجبوری ما الان باستان‌شناسی مثل پزشکی مثلا فلان جا خیلی قوی‌تر پیشگی یا نیست و ایرانی بعد بیا اون اول نگاه کنه در حال حاضر رو عرض می‌کنم و بعد بومی سازی کنه و بعد بتونه پیشی بگیره این قضیه عیناً همینج تکرار میشه بر باستان شناسی چین و مس از ما جلوتره ما بهتر اینا رو ببینیم الگو بگیریم پیاده کنیم جواب ندهیم ولی بفهمیم چیکار کنیم ولی اینا جواب خواهد داد همونطوری که من بحث کردم که دومی که اون یسناهات سیودک و کردم به واضح در همه ترجمه های اوستایی خارجی ایرانی فارسی هر چیز در نزد زرتشتیان پنج سروده از یسناه ها رو مطالبه از اشو زرتش میدونن و به عنوان گاتا میشناسن یعنی گاتا مشتمل از پنج سروده پنج تا یسنا است یسنا تبدیل میشن به چندتا تا هاتر یسنایی و این یسنایی که صحبت کردن و هاتی سی و این جزء گاتا حساب میشه بله پوشتر این گاتا یک سری سودای بخشی هست بسیاره یسناها اون یسناهایی هست که جوز گاتایی اشرو زرتوش نیستن اصلا ادبیات متفاوته قلم متفاوته داستان شخص اول نیست صحبت میکنه در گاتا زرتوش رو صحبت میکنه و به خش اشاره میکنه به طرف اونجا با هیچ که با هم با مظهر صحبت میکنه ولی از جمعشید ویون ها عنوان انسان را میبره این قضیه فرق داره تا با یصنا بخش بعدی از ابستا که یه شخص سووا می اومده وز توشت رو درگیر میکنه با یک گیاه صحبت کنه اورا مزار درگیر میکنه با یک گیاه صحبت میکنه اون یه قضیه دیگه است با و جره این سر واقع زههن در یصنا ها از گاتای زر در هر ابستایی هست این جنبه زارر توشت هست که به عنوان جمعشن عنوان انسان میشناخه. موضوع بعدی این هستش که میگن حتما حتما فلان سرماها باید اصولی باشن نه همچین حتمایی در کار نیستش اصلا همچین چیزی نیست میتونه باشه میتونم نباشه مگه خوشسالی به دوران فیروز شاه ساسانی که هفت سال طول کشید و ما حتی الان براش جشن داریم میگیریم حتی این ور ای شد و یه خوستالی کوتاه واقعی بود هفت سال زیر فشار مااکسیما مردم ایران بودن در سر خوافسانی خوب خیلی هم نیست سال از هفت سال بوده ولی این خویصالی انقدر و اثر مردم ایران تاأثیر گذاشت که هم یک زرببال مسل شده هم برش جشن دارندن میگیرن یعنی حتما نباید چیزی کشدار باشه مثلا یخبندان به دوران جمشید حتما باید اشاره کنیم به یخبندان در... اینبوز ما میدونیم یخبندان چهاره هزار سال پیش بوده یه بشر قارنشینه ده هزار سال پیش دیروزش هم یارش رفته که بخوا به بچهش منتقل کنه وای به حال هزار سال پیشه یه حتما نباید یخبندان ها غسوری بود با... میتونن باشن و میتونن نباشن ممکنه من اعتقاد درم که این غسورو در کوت و شایی یخبند... سرماه شده و خداحافظ یا سرماه هم هستش بور... برف و بوران هستش یخبندان نیست در یفعه بالای کوت بهشون از قبل میگن نره اونجا گیر میکنه میره گیر میکنه مثل این هم کوت نباید که گیر میکنه این ما داریم جمشید هم دوシャレ زمستون سرسیر سخت شده این میتونه حالا اصوله شده باشه ازش از سرمه های قبلتر به جمشید نسبت داره باشه نه دوران جمشید سرمه بد اومده باشه حتما ما نمیتونیم الان اینو چون توربینی فیلم بعدی نداشتیم ببینیم چی بوده موضوع بعدی این مورد سعالبی خب بله خیلی جههای دیگه هم داره کیورمس که کیورمس پادشاه بین مردمو داره پادشاهی میکنه بله نسخه دیگه هم دارن که کیورمس پادشاه کوهاس بعد یه جا اشتباه نوشتن این گرشاخ شده گلشاه و بعد شده گلشاه گفتم گل هاست اینا رو ما داری گفتم کیو مس دو نسخه ازش وجود داره از یکی که مس اولی است یه جا کوه کوهاست تو چی رو زمین نیست نه یه جا پادشاه اولیه ایرانه و همه چی رو زمین هم دارن می‌سازن یاد داشتن این که نشیم که یک نویسنده اسلامی هم اینو گفته تو نسخهش که این پادشاه کوه بوده و بس چیز نبودن نه این نسخه مثبی دستش بوده ما تو نسخه دیگه نه این پاچه اولیه ایران بعد میگن که تا فریدون ما دشمن داخلی نه آقا دشمن داشتیم اتفاقا ارزور دیف از چیه؟ دیوا بهش نسبت دادن یک دشمن سیاه پوسته بشهان خیلی جالبه این دیوا تقسیم بر سفید و سیاه میشن یعنی این تو هندوستان شما شما همینو میبینید یعنی به یک جمعیت سیاه پوست ارزور فرمانده شونه و این حالا شکست خوردن نخواست از ایرانیان ارزوردیف تو جمشید سیامک. دوری سیامک سیامک, دوری سیامک, سیامک هست. هستش و اینا شکست داره. این دشمن خارجیه و من الان از نظر ژنتیک انبوز میتونم بگم اینا کی میتونن در منطقه باشن اینا دراویدین ها بودن که یک بار اونجوری سرشون خوردن اومدن به جنوب و به سمت هندوستان یک بار بعدا آریایی های هندی رو سرشون پایین تر هیچ سیابوس آفریقایی که نبوده که تنها سیابوسی که میتون در منطقه وجود دراویدین ها بودن و این ارزدی دشمن خارجی زمینه که در عسا و بارها میگه تحمورت میره دعا میکنه به این ایزدان و خدایان که تو رو خدا به من کمک کوهی من بدن رو سر که علیه این دیوان مازندران و ورنه مازندری و ورنه حالا هرجا جا میخواین سرزبین رو باشن. ولی دشمن خارجی دیگه نمال طبیعت که نیستن کوه آتش که نیستش که بهش میدید دیوان مازندری و مثلا یا مثلا مازندران حالا بگیم روزش یا ورنه این دشمن خارجیه بعد امروزی‌تر میشه داستان‌ها حالا مثلا چیز حتی نش وزیراشون تو دوران متأخرتر مشخص قهرماناشون در اوستا بعدش مشخص شیداس وزیر روزگی بگیره اگه اشتباه نکنم تحمورس بوده ولی یه تحمورس هوشنگ که این دو تا اهل مطمئن نیستن ولی شیداس اسم وزیرشون متأسفانه این روزه میگرفته تو شاهنامه ما دیره شب‌ها روزه میگرفته شب‌ها روزه میگرفته شب‌ها روزه میگرفته خیلی بدیدا می بوده شبام بیدار بوده ولی اینا هستن موضوع بعدی این هستش که حالا آقای ایران محرم بودن تا قبل از اون آقای دوست ما آقای کریمی ببینید میگن که چارده هزار سال یا هشت هزار سال پیش حتی من شما اعتقاد دارم این پادشاهان دیگه ماکسیمون فاصلشون نظرتو 600 سال بیشتر از اولیش نیست یعنی پیش از میلا دی خود رو بکشیم نمیرن ممکنه حوادث استرویش رو بهشون عقبتر بره و اینا به عنوان یک آخرش. حسرت صد سال پیش دیگه با کوشین خوردمون آخرش این شخصیت ها و حکومتشون بعد تو مصاحبه دکتری من اینا مدیر گروهی که من دانشجو افتاده بودم این تمسخر به من گرفته بود که دورانش کی گشتاس در روزگار نوسنگی ما مگه کی داشتیم به دوران پاچا داشتیم به دوران حالا اینجا مثلا مطرح میشه که مگه ما پاچا داشتیم با تاج زر مثلا اون دوران ما یه مثال خوب باستان شناسی داریم به اونم همینو گفتم تپه در ترکیه چند تا دیگه هم و این شاخصشونه که این قدمت باستان شناسایی در همه مغاز ها۱ هزار ساله پیش دقی که ب تپه دقیقا و دنیای تو این مونده چنان نقش و نگار من بهتون میگم حالا بنای سنگی که داره بعد این جرس های دیوار ساافک آن چنان ع یعنی تخجم شید نقش برجستههایی داره مثل ن تخم شید۱ هزار سال پیش این که دیه میشه که حالا مثلا مادر چه میدونم شاخ و آفریقا. اون قبلا شکار چی داشتیم اون خوشی جمع کن لباس نداشتن همه جوره اینجوری باشه نه یه استثناء مثل گوبکلی تپه هست این همون استثناء در فلات ایران هم میتونوزه شنرق فلات ایران نخستیم پادشاهی و مردمان ایرانی به رهبری کیومرث ایجاد کرده باشن متونه ما هم در نسخه غیر مذهبیش میگن و مردمان انتخاب کرده به پادشاهی قبل از اون آشفتگی بوده یعنی رهبر نداشتن و این قضیه نه ما رو از منطق به دور کنه کیومرث در قبلی نص سریح متون اکثریت متون نه تاریخی مذهبیکاری ندارم نخصست این پادچه ایرانیان است توسط مردم انتخاب میشه جانشین داره به جانشین جاننشین خواهد رسید که زرتارتش در گاتع خش میگین انسان هست پدر داره و میان جلو تا برم به خوراش رو زرد توش رو که گشتهاز که خود کهیه گشتاز از ک هم زرتوش اشاره میکنه کردارها و نسق مذهبی هم داستان هایی دیگه میگن که اونها رو ما میتونیم در قالب به صحبت ها و فرمایینشااطات دوستان بررسی کنیم اینو من گفتم که اینو داشته باشی من تضادی بین خودم و دوستان نمیبینم همونقدر که تضاد می‌بینم بین خودم و کسانی که, که با این شناسی امروز رو تدریس میکنم بل. در مورد که گشتاست ببینید بس ما این هستش که خب این پادشا خیلی کارا بلاها سرش آوردن از اینکه یک به خاطر اسمش که ویشتاس پس در متون کهن گفتن بابایی داره چون اسمش ویشتاس بوده این بابایی داره‌ش بوده یکی اینه یکی که میگن نه این یا فرد مستقل بوده یعنی باز از اون قضیه تطبیق در رفتن. الحمدلله گوساین پر مستقل بوده پادشاه شاهکی هم بوده در هر کجایی حالا شرق هر کجایی و این هزار اول یا نهایتا نهایتا خیلی خیلی بکشیش مثلا اول هزار دوم است از ماتا تا بگی تا هزار دوم و اونجا بوده خب زهر همون طریقه واسه هم بحث گوبتی تپاست میگن یونانی چه خیری میتونم بگم پادشاهی ایرانیان آدامس اشورزروش با این تفکر مبدل 8000 سال پیش بود این منطق نزارا میگم با همون دلیلی که گوبکی تپ برای شما دارید این کافی تونه ولی ما چه خیری اعتقاد داریم غیر از این اسنادی که آقای ایران مه زحمت کشیدن خوندن چند تا مورد هست یکی ببینید اومدن یکی از روش‌های انروز برای اثبات زماندہی خورشید گرفتگی های تاریخی هستن ما سه تاشو به دنیا داشت معروف تو در اونو یکی خورشید گرفتگی دوران مرسلی دوم HTI هست. گینه که فهد 1200 نم چند پیش از میلاد زمان دادن بش. یک که معروف ماتها و ها جنگشون هست که پیش ملاد. 584 پیش از میلاد. 584 کار از الان دانشگاه ایران هنوز خوابند فکر می‌کنم 585 پیش از میلاد. نه این 584 از سایت مساد تن استاد بندگاه. خشگیرفتگی معروف بعدی خشگیرفتگی سال میگم آل تروا است. که اینو بس بسریکسون در سود حساب کرده. که تا به واسطه این خیلی سعی کرده که جنگ تروا 120 سال به 150 به طرف خیلی جالبه که اونا بازم دارن میبنن حفطه رو من هم دیدم که خیلی خوب این تپه خورشیدگیرفتگی خیلی بالاست خب ما میخورشیدگیرفتن متونمون داریم هم دو دینکرده چهار بشه شده شده دینکرتا مجموعی از نوشته‌های ایرانیان هستند از جمله پس ما میتونیم این عجیب ببینیم که به این اشاره شده و, در گزیده های بله. و که در کتاب بهش در سال 300 دین آوری زرتشت روز چون شب می شود و پادشاهی بلرزد خب این خیلی ساده داره با می که 300 سال بعد از دین آوری زرتشت این رفتن اشور زرتشت به دربار گشتاس خورشیدگرافی در روز روشن رخ داره مملکت به هم ریخته ترسیده این یعنی آه. چی یعنی خورشیدگرافی در ساعتی از روز و در زاویه ای از بهش آفتاب باید بوده باشه آفتاب در نقطه‌ای از نسبت به زمین بعد قرار گرفته باشه یکی مردم بیرون باشن بیدار باشن اینان مشغول کار باشن یا بشه بترسن بترسن بله واسه جنگ ماتا شده من از دو تا دانشمن مملکت قایق کردم که دو تا بازه بیان برای من این خورشید گرفتگی در نظر بگیرن یکی 300 سال بعد از دیناوریش رو زرتوش تپ متون کهن یونانی و شاهنامه و اینها بود بله. یکی براساس این نظریه های زبی بهروز بود که ایشون ادعا میکرد من بر اساس علم محاسبات ریاضیات و نجوم این حرفا 1768 در نظر گرفتن گفتم 300 سال بعد از این در نظر بگیرید به من دادن نتایج دو تا از آدم از هم جودای گیشون کارشناس ارشد وقت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بود جایی که تقویم مملکتو می‌دنم بیرون ایشون دکتر اشش افشین نمیرانیان زرتوشی خودشون هستن عضو گروه فیزیک دانشگاه علم و این یعنی دو تا آدم معتبر در این زمینه از نه که استفاده کردم مشترک بودن مفصلی بعد بات این افزار خود ناسان استفاده میکنه، بعد داداشون عین هم بود، عین هم و هر دو رؤیه خوشی گرفتی اتفاق نظر داشتن که خوشی گرفتی شما بات این باشه و خیلی جالبه، این خوشی گرفتی که اتفاق نظر داشتن خیلی خوشی گرفتی بود که در تابستان رخ میده ساعت مختلف از فلایت ایران میگذره شهری که منصوب به پیکیانیان اون روزگار بوده یا مستقیم براد میشه میشه زابل یا این داشی هامون یا اینکه سایش انقدر تاریک است که بر مثلا پایتخت کیانیان که بلخ هم بیفته در تابستون رو میده از های مرتبط نگذره و در ساعات مرتبط یعنی مردم کاملا بیدارن 8 و 9 و 10 صبح مثلا بله. کلس شیش صبح اینا نیست یا غروب نیست خیلی جالبه برای زعی بهروس، حد اقل حداقل خورشیدگیری نزدیکی که با این ویژگی‌ها تابستون اینا باشه 10 سال فاصله داشت دو سال 336 336 نمیافتاد چون اشو زرتش 30 سالگی دیناوری کرده. میشه 330 سال, سال بعد از تولدش. اون موردی که برای اسناد یونانی میافتاد دقیقاً سال 330 بعد از 5000 سال قبل از جنگ تروآس. یعنی چی ساده بگم؟ یک سرش میگن اشو زرتش 5000 سال قبل از جنگ تروآ. جنگ تروآ 6184ه. 5 این میشه عدد یکم. 5 ازار سال قبلش میشه 6183 و و و پیش از میلاد یعنی 1184 5 ازار سال قبل 6283 330 عدد بیارید این وقتتر میشه خورش گرفتگی سال 51855 پیش از میلاد این خورش گرفتگی است اینه شگور نمیناسن که 330 سال قبلش چه خبره ولی عددی که به دست آردن دقیقا میخوره 330 سال بعد قبل قربا جنگ کهد و این تصادفی نمیتونه باشه می‌دونید این دی مهندسی نمیتونه باشه که مثلا این یونانیا برای خودشون چیزی نوشتن 2000 سال بعد بخواد 2500 سال بعد بخواد با این ریاضیات مثلا خوشه‌گیر در بیاد این عیناً نشون میده که این یونانیان و شاهنامه‌ی فردوسی رو هوا هفت نزدند که گشتاس و عشو زرتوش باید در این حدود زندگی میکنه خو اشو زرتوش در سال سیم گشتاس اومده به بلخ و خودش 42 سالش بوده یعنی دوازده سال مونده به گشتاس باشی پاچه برسه و از این 6183 پیش رزمیده پاچه هی لرهاس به باباشه بابایی که گشتاس به حالا فاصله این چند تا پاچه با 10500 پونس هتا پاچه قبطرش که جمشیده بله چهیخی میتون چهارده هزار سال باشه این 6-7 قبطر نمیتونه بره که هم هست این رو من میگم کرداراشون میره ولی شخصی چیزشون نمیره بله متشکرم. نمو ایران مهر در فرمایشات دوره گذشته خودتون هم در مورد این زمانیابی و نوار تاریخی باست هم فرمودید و به اضافه اینکه ما هنوز حالا درست آقای کریمی هنوز به دوره جمشید رسیده بودن و مسائل رو مطرح کرده بودن ولی ما هنوز کار داریم برای اینکه بتونیم به دوره جمشید که پایه های اصلی تاریخ قلمروی میانی زده میشه در موردش صحبت خواهیم کرد هم ادامه در واقع خصوصاً زمانیابی و مکانیابی که در واقع در مورد شما کار کردید فهمشاتون میشه درودشان عرض نگون گرامی بله ما روی این رسم نوآور تاریخی زمینی که زمانیابی میکنیم و زمانها رو مشخص میکنیم خب بعد که آدمش مشخص شد دورش مشخص شد زمانش مشخص شد خب ما مکانش هم باید بگیم دیگه این هم بعد حتما باید اتفاق بیفتد. همینطور که یک فرمولی من حیفم میاد هنوز نخواستم وارد دوری جمشید بشم چون دوری بسیار بسیار مهمیه پرسنده نمیشه از دستش بدیم اونو به زمان خودش با تغییر واردش میشیم. در باره فرماشات های فیروزی اون چیزی که من مثال میزنم گاهی میگم ما خیلی دوست داریم جمشید رو با تاج و تخت و اینا تصور کنیم چون من زمان 18 سال هزار سال دوری جمشید میدم در اون موقع دیگه داشتن تاج و کاخ و اینا یه مقدار نمکنه بله من از اون منظر میگم و در اینکه میگن که اینا نمیتونستن دیروز شدم یا چون نگه چطور میتونستن چهارده هزار سال رو سب عرض کنم که ما های ایرانی چند هزار ساله؟ دوازده هزار ساله دیگه، دوازده هزاره داریم دیگه. تاریخ ایرانی بر مبنای دوازده هزار سال، دوازده هزاره نوشته شده. آغاز میشه هزاره به هزاره میاد جلو پایان پیدا میکنه و بعد دوازده هزاره بعدی آغاز میشه. من مثال میزنم. ما چرا سیزده به در میگیم؟ دوازده روز که از آغاز سال میگذره، تمام میشه. آغاز دوازده هزاره بعدی رو به صورت نمادین جشن میگیریم و میگیم سال و آغاز میکنی. درسته؟ دوازده میبینیم که خیلی تو فرهنگ ما هست دیگه وارد شده ولBERگ های خامنه تا دوازده های فراوانی که ما داریم. خب چرا گفتن دوازده هزاره؟ چرا نگفتن چهارده هزاره؟ چرا نگفتن هشت هزاره؟ چرا پنج هزاره؟ چرا دوازده هزاره؟ اینجا حالا اینم یک بحث شناسی داره. اصلا اهمیت قلم روی میانی و فلات ایران در اینه در کاهن بودنشه ما هنوز واقعا موندیم اینا چطوری تونستن دوازده هزار رو تو سینشون ثبت کنن و بیارن تو استا و استرااشون وشون با باید دوازده هزاره بنویسن خیلی عجیبه ببینین کره زمین محورش یک انحرافی از حالت عمود داره 21 درجه و 23 دقیقه حالا برک هم چیزی این با انقلاب تابستانی انقلاب زمستانی میشه دیگه یک ای داره این ثابت نیست این زمینی که کجه در طول زمان دور خودش هم میچرخه نه؟ حرکت وضعی زمین رو نمیگم ما این خط محور رو تو ذهنتون تصور کنین این فرض کنین مثلا یه نی توی لیوان گذاشتین با انگوش اینو تابش بدین به صورت ذهنی تصور کنین یه قیف درست میشه این بله. تهنهی تو لیوان این بالا که اینطور میچرخه یه قیف دره، قیف شکلیه، قیف چپه که سرش پایین، قاعده اش اینطوری. این قیف، این محور زمین طی هر خدمتتون بگم 25600 سال یک بار دور این قیف می‌چرخه. نصفش کنین میشه چقد؟ 12800 سال. بله. حالا شما 800 سالم گردش کنین. در هر بار گردش که این می‌گرده، تو هر نیم گردشش یخ بندان رخ می‌ده. درست باله با تودین تو پول شمالی ها. این میگرده باز دوباره یخ بندانا دیگه این حدودی با هم تاریخ یخ بندانا جور در میاد هم با دوازده هزار ایرانی جور در میاد و این دوازده هزار سال جالب افلاتون هم ثبت کرده اون همین دوازده 12 هزار ایرانی رو میدونه آگاه برش و ثبت کرده یک بار الان میگن الان این محور نوکش رو به ستاره قطبیه هر دوازده هزار رو 800 سال یک بار میگرده رو به ستاره ای به نام وگا با. دوباره باز برمیگرده رو به ستاره قطبی این قیف رو پس ببینید این دوازده هزاره نمیتونه به قول خدای فیروزی خیلی هم همه جو بختکی باشه بگیم حالا یه چیزی گفتن دیگه ببینید خیلی نزدیک به نیم دوره این محور زمین به یخ بندانا در این حال من این فقط خواستم اشاره کنم خب درباره این مکان یابیا ببینید بحث های دست کم دیدگاه خودم بنده توی نوار تاریخی باعثای پیش از ایرج رو مربوط به انسان شناسی میدونم نه ایران شناسی. حال میگم اونایی که دوست دارن مستند بسازن و مثلا جنب شده توی کاخینا معرفی کنن یه دیدگاه دیگه یک نظرشاد میخوان اسطوره رو یه جلوه‌ای بهش ببخشن که مفهوم بشه. اما بنده خودم هر وقت پیش از ایرج صحبت کردم بدونم دارم در مورد انسان شناسی حرف میزنم نه ایران شناسی. دوره سیامک رو بنده نماد ورود و سکونت انسان به آسیای غربی میدونم از آفریقا دوره هوشنگ رو نماد تشکیل خوانی میدونم. می جمشید رو نماد شکلگیری ایرانویج در دل خونی رست می دونم فریدون رو نماد گسترش از مرکز به سرزمین های پیرامونی ایرج رو نماد شکلگیری جمعیت ایرانی بله منوچه رو هم نماد تشکیل مرزهای ایران شهر به دلیل پرتاب اون تیر آرش که نمادی بود. در این حال من بس می کنم بدونی که تو این زمینه دارم بحث می کنم. یعنی وقتی رفتم پیش از ایرج دیگه اون مربوط به انسان شناسی انسان شناسی. یعنی در واقع انسانها گش... یکی بودم در. بله بله. بله. ختو رس بودن اگر می بینی درباره گشتاس حرف میزنم خب پس از ایران. ایران من دارم درباره ایران حرف میزنم. بنی درباره مکان یابی ما دوچار آسیبایی هست. هم زمان رو که داریم کار میکنیم درباره مکان یابی ها ما دوچار آسیبایی دو آسیبای هستیم. ببینید مثلا حمای داراب رو میذاره توی صندوقی چون از بیم داره از جونش اینو رها میکنه تو آب. حالا این داستانو ما زیاد دیدیم دیگه. بله. پس چه شدند سندوگر میکنن توی قلم روی میانی تا دلتون بخواد بخاطر بله تو تورات هم هست. بله. حالا مسان ببین کیخس رو هم پنهانش میکنن که افراسیاب نکشش وقتی بچه بوده. رو قایم میکنن که آستیاج نکشش نمیدونم فریدون رو قایم میکنن که زههاگ نکشش داراب رو قایم میکنن که کشته نشه. سون اکادی. آره تو میان رودان داریم، فراون داریم دیگه. این استوره به حال مال این منطقه است. بله. من مثال دیگه بزنم مثلا آستیاج وقتی که میره میان رودان به اونجا میشه مثلا تو تاریخ که است و اونجا میمیره از پیکرش تو میان رودان که افتاده بوده تو بیابان یک گله شیر محافظت میکنن که پیکرش آسیب نبینه. بعد ما داریم دیگه. ده حسش اینا <laughs> بگم درباره این مکان یابیا یک موظعی که ما دو گرفتارش شدیم خدا این روس‌ها رو نبخشه. این نام آسیه میانه رو ساختن. تمام تاریخی منطقه رو اصلا تحت تاثیر بدی قرار دادن. بعد ما همه چیز رو ارجا میدیم به آسیای میانه تنها موزل تاریخ موجود نیست که بگیم میگن که ایرانی از آسیای میانه آمدن شاهنام شناسا کسانی که به تاریخ استوری ایران معتقدن و شاهنامه رو قبول دارن هم جالبه کل خواستگاه شاهنامه رو احال میدن به آسیای میانه, میانه. عجیبه ها اسمون منطقه رو گذاشتن آسیای میانه ها گذاشتن بعد و اصلا من نمیدونم تعجب میکنم. اوسیه میانه اگر رو کره زمین نبود ما اصلا دیگه انگار رو هوا زندگی میکردیم همه انسان ها اولش تو آسیه میانه بودن شاهنامه کل اتفاقات تو آسیه میانه است تاریخ ما از آسیه میانه آغاز شده آقا جای دیگه رو کره زمین نبوده نمیشوده باشن حالا میجوی اتفاقی معجزه گیری کردیم از دست آسیه میانه پدر بزرگای ما که تو پردخانیان تو همین 100 سال پیش شاهنامه میخونن خدا رو گواه میگیرم اصلا نمی دونین میانه چی هست فهمیدن که یه جور مثلا آسیا به وسط ده اصلا از این بحثا نダشت. قراروت میگفتم سال بله. می بله. حالا اصلا ارجاشم نمیدادن به اونجا. شما ببینید من این فراموش نکنم همون که داراب رو تو آب ول میکنه، این آب کجاست؟ دجله شاه کیانی بچهش رو میذاره تو صندوق، تو دجله ولش میکنه. میاره کجا بوده؟ ما فراوان اشاره به ری داریم توی تاریخمون درباره پیشدادیان کیانی. حالا بلخم هست و جالبه اینا رو وای میکنن صاف میشه حالا جالبه چون امروز هم تاجیکا فارسی زبونن میگن هم درست وسط تاجیکستان بود این آسیا میانه مثل یک بختک افتاده تو تاریخ ما همه چیمون انگار باید به با اونجا وس کنیم تا درست در بیاد ما درباره اون کوچ گفتیم که اصلا اون مهمله از اونجا به اینجا حالا تو دورجی هم شدیم بررسی میکنیم که چرا خنده ساختن من تاسف میخورم که بحث شاهناممون هم یک سره دارن حالا من یک چیز برای شما میگم بزنید کم بخندیم بیا تصوری بکنیم. میگن که مثلا فریدون این اما آسییه میانه بودن دیگه. حالا عجیب تمام استرو های ما ارتباط با داوون داره مگه آسییه میانه داوون داره. مگر که اینطوری تصور کنیم فریدون تو آثیه میانه بوده. بعد بچه بوده میخواستم بکووش آوردنش حالا جالبه. به یمنه فریدون آسییه میانه است از ترس زهها که تو یممننه فریدون رو میانن بخندیم. چیکاروات حالا با فرض میکنیم از آسیه میانه فریدون آوردن دماوند بعد بزرگ میشه برمیگرده باید بره اونجا دیگه چون ما همه چیمون انگار آسیای میانه بوده میره آسیای میانه بعد برای جنگ با زهاک برمیگرده دوباره به اروند از آسیه میانه مگر که تصور کنیم که زهاک به آسیای میانه حمله کرده باشه بعد اینجوری فرض کنیم دیگه بعدا زهاک دستگیر میشه بعد زهاک رو نمیبره آسیای بیاله میارش دماوند اونجا به بند می بعد که اونجا به بند می کشه دوباره برمیگرده آسیه میانه این چون نمیشه دیگه همه چی با تو آسیه میانه باشه موضوع یک بحثیه که اینجا با تو دور جمشید بحث کنیم یک جابجاییه حالا اشتباه بگیم چی بگیم رود دایتی دایتی نیک جاش جابجا شد که بعد توضیح میدیم که چطوری جابجا جا شده آمودریا رو دایتی فرض کردن ناچارن تمام چیزی که تو وندیداد آمده رو به اونجا وصلش کنن دیگه چون چون ها رو تو آسیای میانه فرض کردن که به آرال میریزه به دره خارز میریزه ناچار ناچارن همه چیز رو بگم پس کنار دایتی بوده جمشید کنار دایتی بوده ورد کنار دایتی بوده همه بله چون دایتی رو امروز ما نمیدونم چجوری شده وصلش کردیم به درچه خارز پس همه چی با تو آسیای میانه باشه اینها من تو مکان‌یابی میگم حتی من احساس کنم تو مکان‌یابی بیشتر دوچاره مشکل بشیم تا زمانی یا ویزمون یا بیریم کارش میکنیم این مکان یا بیا خیلی چیزای پیچیده است ببینید ما نمیخوایم دوچاره این وضعیت بشیم که اینا تاریخ موجودو نوشتن دوچارشن یه ای ما یک بار دیگه برمیگردیم تو بحث خنده‌دار کوچ تو بحث کوچ باید فرض حرکت از شمال به جنوب حفظ بشه دیگه بله این فرض بله. بله. از سوی اون چیزی که گفتن حالا که از شمال میان به جنوب اینا حتما باید با آشوری ها هم برخورد داشته باشن که او سند سند اثر سوم درست در بیاد دیگه که من میگه من اینا رو دیدم بعد اینا اگه آسیای میانه بودن بعد در کنار دریچه چیچست یا ارومیه با آشوریا روبرو شدن اگه از آسیای میانه بیام پایین از خراسان بیام پایین که پس چچسی در کار نیست که برای که این مشکل رو حل کنن گفتن از دو سوی دریای کاسپیا اومدن پایین یعنی همه از آسیای میانه هم اضافه مستفقا. کردن بعد چون فرض کردند که اینا مورد حمله آشوریه قرار گرفتن داستان رو اینا رو بخونین میگه بله اینا کمی از چیچست به سمت شرق اومدن بعد رو نقشه نگاه کرده و دیده کجاست اگه از کیچس بیان کمی به سمت غرب قر... به شرق یک کم هم به سمت جنوب جنوب شرق چیچست گفته بعد به عراق رسیدن جالب بود هم قشنگ انگار اون موقع بوده اومدن به عراق رسیدن بعد دوباره همون حرکت عادی به سمت جنوبو کردن خب از اونجا بیه به جون میرسی به حاشیه شرقی زاگرس دیگه میگه بعد دیگه کم کم حدود سده نهم اونجا رسیدن که دیگه هم تو چیچس کوساره شده بودن بعد دیگه اینجا ساکن میشن دیگه از سده نهم اینجا ساکن میشن بعد مثلا حدود استان فارس و اینا مشکل حل شد دیگه ببینیم ما نمیخوایم دوباره این داستانا و قصه ها بشیم یعنی همه چیزو بخوام حل کنم بعد دکتر وکیلی برای که مشکل نامهای کورو و کامبوجو رو که در هند گزارش شده حل کنه حالا دیگه خرابترش کرده میگه که اینا بعد یه قوسی هم به سمت جنوب شرق ایران گرفتن یعنی از عراق اینجور تاب خوردن دوباره آمدن به فارس میدونیم برای که اون فرض اولیه رو به قول دکتر حسانی بخواهی حفظش کنی و داستان داستانتو بسازی دیگه ناچاری هر پرت و پلایی ما نمیخوایم دلار این پرت و پلا بشیم من فقط درباره مکان یابی ها گفتم که این آسیه میان اینا حوظمون رو پرت کرده بله. توی مکان یابی هم خیلی با دقت خیلی متکررم س باقا ایران میر. جناب آقای کریمی در مورد فرمایشات از کنم که برنامه پیشین خودتون در اوائل این برنامه جناب آقای فیروزی یک سری مسائل و پاسخهایی رو فرمودن به هر طور شما دوست گرامی توصیه میکنم که خیلی روی چلنج و چالش تاکید نکنید ولی خب حالا اگر پاسخی رو دارید در حد چند دقیقه بفرمایید و بعد ادامه مباحث زمانی بر اساس زبانشناسی رو بفرمایید به نام خدا با درود فراوان دوستان فرهادن که اختیارش هر خود دوباره نمی انجام بدیم همون کاری که چینی ها کردن ما دور انجام بدیم خب این حرفو من میگم خب چپیام هم من حرفو میزدم می گفتن همین دیگه نمی کنه انجام بدیم همون تجربی که روسا ها ما هم انجام بدیم قرض زده ها هم میگفتن عرب زده ها همین و هر کسی که می این حرفو میزدن میگفتم بیا دوباره این تجربه نکنیم احسان اگه تجربه نکنه که منظرمم همون حالت جانوری خودش می مونده پس ما خودموند یه سیه خودمون تجربه کنیم چرا میم فرق میکنه با چین چین چون چقدر محدودش چقدره محدود اصور چین چقدر میشه هم زمانی هم مکانی هم زبانی هم مکانی هم زمانی من خواهم مقاله نوشتم در مواد واجه چرخ مهور راه و حتی لباس پشم گوسفندان که از نخستین و آغازین فناوری که بشر بهش رسیده بله از هندوستان شروع شده تا هفتاد تا زبون پیش رفتم شما میتونید ببینید هیچ کتابی در دنیا پیدا نخواهید کرد که این کار کرده باشه همه‌شون مستدل همه‌شون تو دانشگاهی زبان‌شناسی تایید شده خب اسوره ایران یک پشوانه هندوستانی داره یک پشوانه تو اسکاندیناوی داره من نمیتونم بیام جمع همین همینجوری برای خودم پادشاه این حقو ندارم چون پاسخگو جمشید تو هندوستان باشم. باید پاسخگو جمشید تو اسکاندیناوی باشم. ما نمیتونیم بیام با چند تا جمله توجیهی ساده زمان یخبندان بیایم اسناد مسجل زمین شناسی رو زیر سوال ببریم بگیم چون مثلا 8 سال اتفاق افتاده خب این نباید حتمی باشه. آقا ما دریم میگیم این واو به واوش همخونی داره. بله واو به واو وندیداد و مینوی خرد با ورم چهار همخونی داره. اینه ما نمیتونیم با یه زمله مثلا توجیه ردش بکنیم که میگم من حرف و جلسه پیش تکرار میکنم این نمیشه که ما گفته بودیم انباشت داده ها پس چی شد؟ پس بخواید هر جا گیر کنیم بیم یه داده یه بذاریم کنار. باید همه داده ها باشه ست تا ست کنه یه دونه صدق نکنه اون داده داده علمی نیست گیر قایم کرد ما اینا رو میخویم داستان مثلا هم دیگه تعریف کنیم بعد این اخر بیایم همه اینا رو جدول کنیم بیایم اینا رو عمل مقاله کنیم بدیم به دانشگاه ها حتی اگه یه دونه از اینا گیر بکنه اونجا مطمئن باشید کار اون گیر خواهد کرد به راحتی آب خوردن ما رو رد خواهند کرد چه زمین شناسی چه زبان شناسی چه اسطور شناسی شاید یه موضوع تو سه جا بهترین پاسخ رو بده مثلا من تو زرتوش مشکل دارم نمونه خوبی هم آوردم ولی خب من نمونه میارم زمین شناسی ستاره شناسی زبانشناسی اسطوره شناسی که نشون میده دوره فریدون چه موقعی که و هرگز گوری گوشتافس نمیتونست قبل از دون باشه. اون هم میتون باشه اونم میتونه مستعد باشه حالا من همراه میتونه درسته باید میارم دونه به دونه هم سیاره بهرام و نام بسیار بسیار رازآمیز بهرام ایزده بهرام که در تمام تا یونان رفته ما این ایزد هم در ایران داریم هم در هندوستان داریم هم در ارمنستان داریم هم تو یونان داریم هم تو سقدی داریم هم تو برخی داریم هم تو خوتنی سکایی داریم تمام این پیدا شده این ایزت بسیار مهمه چرا اسمین سیار رو ما گذاشیم چرا نماده جنگه چرا نماده پیروزیه که در اروپا اسم مارس هم روش گذاشتن حالا اونجا رفته بله که عربی شد نرخ این اصولای ما ما می‌بینیم فلج می‌کنی با یه با یه تاج گذاشتن سر یک نفر داریم یک چندین هزار سال فلج می‌کنی خب من خدمتتون عرض کردم که الان یه نمونه میگم خودم تکرار میکنم زبان شناسی نزدیک‌ترین علم اصول شناسیه یعنی همه اینها پیش زبان شناسی هیچه اینو شما میتونید بد پیگیری کنید من نه اینکه رشته خودم این باشه بگم شما میتونید بد بپرسید از استادای بزرگ دنیا که آقا نزدیک‌ترین دانش به دانش کنسولشن اسی چه دانشیه شک نکنید که شما زبان شناسی خوب الان مثلا ما داریم میگیم گودرز از استر گودرز ایم نام میبریم خب ما میدونیم که این د میتونه قدیمش ت بوده یعنی مثلا تبدلی که ما تو عربی هم داریم مثلا ازدواج مثلا میدونیم که این استواج بوده افتعال بوده که ت شده ده بله یعنی ته دجوت به قوا عربی بله حتی چون تزوج میاد درود بر یعنی این انقد این gostaria امیغه که حتی تو های سامی و حتی تو زبان ترکی ترکیه هم گروه ترکیه هم یافت شده پس میدونیم که این نشونش اینه که آخوا این ده قدیم بعد چه بوده باشه بله پس این گوت ریشه اصلیشه گودرز نماینده قوم گوتی هاست نه یک فرد تاریخ گوتی ها مسجله و جالب اینجاست اینو من آجان ایدی تو سایتشون آوردم میگم وگرنه نمیگفتم در موردی که دوستان در مورد دیو سفید و دیو مازندرانی که دیو سیاه در ویدیو هستن بسیار نادرسته بسیار نادرسته واسه بس دیو سفید که بوده به جز اون جنس سفید چه کسی جز آریایی‌ها که بوده نه چه جنس سفید نه جنس اصلا دیو شما بهت ببینید دو زمان مازندرانی دیو به چه معنی من این رو نمی‌تونم بگم ولی خب به امید خدا این همه چاپ خواهد شد هرگز دیو سیاه به معنی آدمای سیاه پوست نیست به هیچ عنوان به هیچ عنوان تو... اصلا کنم... معنیی هستش خوب من میگم نمیتونم لو بدم چون کتاب چاپ بشه ولی نویدو میدیم که اصلا هم چیزی نیست سنداشم میاریم سند زبان شناسی هم هست از کتابای قدیم مازندران هم استفاده شده در یک کتاب در حال چاپ هستش بله بله, بله. نمیتونم چیزش بکنم بعد خدمت شما راست که خیلی جالب دمانی من نکته جالب بگم در شعر فردوسی فردوسی از گودرز ببینید به چه اسمی می صدا میکنه میگه چنین گفت کانفر آزادگان میدونید که آزادگان یعنی ایران که ایر یعنی آزاده در تمام متون هر جو آزادگان دیدید یعنی ایرانیان میگه چنین گفت کانفر آزادگان سبهدار گودرز کشوادگان حالا بعضی اینو کشوادگان خوندن بعضی کشوادگان خوندن من اون چیزی که تو مال ده خدا دیدم کشوادگان بود جالب اینجاست در یکی از کتیبه کتیبه نمیگم نوشته کتیبه یعنی دیگه مسجل. در یکی از کتیبه های که باز نمیتونم بگیرم کنون کشوه و کون کتیبه تو چاپ بشه میاد از این قوم نام میگه قوم این کشواوا. کشوه کشوه حالا فردوسی چی میگه چنین گفت کانفر آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان کشوادگان اصلا بی نظیره یعنی داریم که گوتی که تو اون سندی که مال ولاغ رو خواهی کنم، تو اون قدیم ویلای ما ازشون نامورده شده. همین در زیبنا دو میگی ما از داریم که این دایره قدیم ته بوده. از بله ریشه بله. گوته. ما هنوز در میان لورها و کردها قومی داریم من گوته گوتوند گوتوند هم گوته وندم داریم. هر تو بالاخره. سه گوته وندم هم همین قوم گوته کاملا میشناختند. دیدی در آشی میگه. ما مثلا میینیم تو عوستا داریم میاد با فریدون اصلا با پدر فریدون صحبت میکنیم میگه پدر فریدون تو هم یسنا میگه پدر فریدون به این دلیل مثلا خدا بهش فریدون داد آپتین بوده اسمش آبتین فارسی شه اصفه ی که چون گیاه همون فشرد خب الان زبانشناسیم به شما میگه مسجل فریدون اسم یک نفر نیست چون از ریشه همخان سه سه سه نقطه بر روی تشکیل شده سه سه نقطه در گروه زبان ایرانی در زبان هندی سنگسریت میشه ت. خب. همین رو شما در سنگسریت می‌بینید. میبینید و این سه سه نقطه جداز به قانون گیریمه که حتی شما اینش در زبان هندو جرمنی میبینید که همین الان واجه سه شما دقت کردید توی انگلیسی میگن سری سه سه نقطه سه نمیگن یه دقیقا مثل عوسته ای کاملا نام فریدون مسجله و یعنی سگونه شدن من من که رو دارم میگم یعنی ثابت شده ثابت شده است این آقا سه تا پسر داشته اسمیکیشون سایرما است سایرما اصلا در کتیبه ها اسم سرمت و نوشته یونانی اومده همه میدونن که آقا سایرما سرمت که سه سر ر لغزشی تبدیل به ل کناری شده تبدیل ر به له خیلی ما داریم این که دوستا من گفتن گل خوندن بله و اونا اشتباه کردن گر گرگل هم خونده میشه هنوزم تو خیلی از از محلی داریم که گل به معنی کوه مثلا که مثلا دیوار و دیوال میگن پنجیر رو خیلی جواد انجیل میگن بعدا اشتباه کردن تو کتابتشون کردن گل و یان یعنی گل با همون گرشاخ یکیه بعد خدمتشون اصلا که سیرم شده سهمو سرمد در شاهنا بنا صد اومده اسمش قومه معنی میشه یک نفر آدم یک بچچه یک قوم باشن یعنی یه،, یه،, یه ایل بچه زایده اسم یه ایلش یه نفر بوده بعد ایرج کاملا همون ایریان و ایجاست که هم اصلا نام ایران وژو ما از این گرفتیم از ایراج گرفت که از دو تا کلمه ساخته شده یعنی این, این کلمه ترکیبیه یه نیست از ایر به آریا و ویج به معنی بیزه و کانون شکل نژاده در اومده در زبان چک اومده در زبان اسلوواکی اومده در زبان براهمی اومده در زبان آلبانیایی اومده تمام اینا مشخص مسجل ایراج فرد نیست دیگه چقدر با سند زبان شناسی رو کردن گفتن زبان شناسی حرف آخر میزنه در اول آخره آخر میزنه این وسط میاد از دانشهای دیگه کمک میگیره نه که دانشای دیگه زبان وسط زبان شناسی بزنن کنار چون این اصولها بر اساس زبان شناسی اون منطقه شکل گرفته ما از دانشهای دیگه کمک میگیریم که اینا رو تحیید کنیم نه اینو... اینو بزنیم کنار دانشگر بزنیم وسطش و بازم تکرار تو اکرار سب که ما باید ایرانی باشه ایرانی هم یعنی چی؟ یعنی که بازم میگم همه یه نوشته های ایرانی هیچ فرقی نمیکن ما نوشته مقدس نداریم چون داریم تاریخ یک ملت رو می نویسیم میخواد گاهان باشه که من خیلی علاقه اوابستا دارم همیشه تو مقالات هم همین هم دیدن هش وندی وندیداد کتیوا فارسی وستان همه پهلوی شاهنامه حتی نویسند های همه باید از فیلتر بگذره یه دونه فیلتر گیر کرد به درد نمیخوره چون مطمئنن بدتر شکست دام میده خیلی متشکریم جانباقایی کریمی بقیه دوستان متشکریم از توجه شنوندگان گرامی ایمیل اینفادصدای امید داتکام منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات و تذکرات شما هستیم به خصوص منتقدین گرامی همچنین شماری پیامک 3068 2244 هم در اختیار شما شنوندگان گرامی هستش قسمت 17 ام رو به پایان هستش و ما تا آغاز قسمت 18 ام شما شنوندگان گرامی رو به خداوند متعال می‌سپاریم خدا یار و